عزیزان به کلاس دیگری از دانشکدی کتاب مقدس خوش اومدیم. ضمن بررسی و مطالعه کامل کتاب مقدس به کتاب دیگری رسیدیم. در این جلسه انجیل متا رو بررسی می ما چند جلسی رو به طور خلاصه به بررسی معزی سر کوه اختصاص دادیم که در بابهای پنج و شیش و هفت اومده. امروز می‌خوایم بر این تمرکز کنیم که چطور میتونیم اصول خدا رو در روابط خودمون به کار بگیریم؟ معلممون امروز نسایه عملی کتاب مقدسی به ما خواهد داد. در این جلسه ما قصد داریم مشکل ترین بخش کتاب مقدس در این گفتگوی بزرگ عیسی رو بررسی کنیم. لطفاً به دقت گوش کنیم. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم.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 و به دیگران نیز چون این تعلیم دهد در پادشاهی آسمان بزرگ خانده خواهد شد بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد آیاتی که خوندم از متا 5 آیات 17 تا 20 بود که وسیع ترین بخش سر سرکوه با اون شروع میشه در جلسه قبلی دیدیم که امده تعالیم این موعظه در خوشا زیبا بود بقیه موعظه که در بابهای 5 و شش و هفت آمده کاربرد اون موعظه هستن هنوز کاربوردهای مهم زیادی در اینجا وجود داره در آیاتی که الان براتون خوندم عیسی دو مطلب رو به ما یادآوری میکنه ابتدا او در مورد شاگردانش که قرار هست بخشی از راه حل و جواب او باشن مطلبی میگه عیسی به ما میگه که شاگردان او باید پارسا باشن بسیاری از مردم ادالت شخصی رو اشتباه میگیرند. عیسی در این چهار آیه میگه اگر بفهمید که من اینجا چی تعلیم میدم، پارسا خواهید بود و ادالت شخصی شما خیلی بیشتر از ادالت فریسیان و علمای دین خواهد بود. دومین مطلبی که در این آیات به ما میگه، چیزی در رابطه با نظر او از کتاب مقدس هست. حالا اینجا هم مثل بقیه تعالیم سرکو باید به پایین کوه و به مردم و مشکلاتشون نگاه کنید یادتون باشه که کاربرد تعالیم سر کوه زمانی امکان پذیره که ما به پایین کوه بریم و وارد اجتماعات بشیم جایی که شخصیت مسیحی بر فرهنگ غیر مسیحی تأثیر میذاره این کاربرد عملی شخصی تمامی این تعالیم هست چیزی که عیسی اینجا میگه اینه آیا مردم پای کوه رو میبینید شما نمیتونید بخشی از راه حل برای مشکلات اونها و جواب سوالات اونها باشید مگر اینکه شخصا پارسا بشید بنابراین باید درست بفهمید درست باشید و درست انجام بدید ایسا همینطور میگه من در مورد شریعت خدا فلسفه ای دارم وقتی عیسی به قانون یا شریعت خدا اشاره میکنه منظورش کتاب مقدس هست در اون مرحله عهد جدیدی وجود نداشت بنابراین وقتی عیسی به شریعت انبیا و یا شریعت خدا اشاره میکنه درباره عهد قدیم صحبت میکنه چیزی که عیسی به شاگردانش میگه یک چنین چیزیه وقتی شما پایین بین اون جمعیت برید و بخواید بخشی از راحل و جواب من باشید لازمه که کتاب مقدس رو به خوبی بدونید باید بدونید که چطور شریعت خدا رو به کار بگیرید در این بخش وسیع از متا پنج ایسا شش بار میگه گفته شده است. اما من به شما میگویم. بسیاری بر این باورند که وقتی به این قسمت از موعظه سر کوه میرسند ایسا سعی میکنه بهتر از موسا عمل کنه. اونها اعتقاد داشتند که ایسا میگه موسا این رو تعلیم داده اما حالا من کلام واقعی رو به شما خواهم گفت. و اعتقاد داشتند کلام حقیقی که ایسا به ما میده در تضاد با موسا هست بنابراین برای ادده این سوال پیش میاد که چرا باید عهد قدیم رو بخونیم؟ در حالی که ایسا احت قدیم رو منسوخ کرده اگر این بخش وسیع متا پنج رو با دقت بخونید خواهید فهمید که عیسی عهد قدیم رو منسوخ نکرده شش بار در این قسمت عیسی میگه هر چیزی که من به شما تعلیم میدم تماماً مطابق با کلام خداست اگرچه تعالیم من با تعالیم و سنتای فریسیان و علمای دین تتابق نداره قبل از اصلاحات که در سال 1500 میلادی با نهزت مارتین لوتر شروع شد اگر شما می‌خواستید انجیل رو بخونید باید ابری، یونانی و یا لاتین می دونستید چون که تا حدود 1000 سال کتاب مقدس فقط به اون زبانها وجود داشت در خلال سالهای 1522 و 1534 مارتین لوتر کتاب مقدس رو به زبان آلمانی ترجمه کرد. در نتیجه ترجمه کتاب مقدس به زبان آلمانی کسانی مثل پین دوزها، کارگران، نجاران، مردان خیابانی یا کسانی که امروزه به اونها ولگرد میگیم توانستند انجیل رو بخونند. در اون زمان کلیسه ها فکر میکردن که این چیز ترسناکیه که یک فرد آمی کلام خدا رو به دست بگیره و اون رو برای خودش تفسیر کنه. کلیسا میخواست کلام خدا رو خودش برای عوام تفسیر کنه. لوتر حقیقتاً تحول قدرتمندی رو در اروپا با ترجمه کتاب مقدس به آلمانی به وجود آورد. دو قرن قبل از لوتر، وایکلیف کتاب مقدس رو به انگلیسی ترجمه کرده بود. کلیسا واکنش خودش رو نسبت به ترجمه وایکلیف این طور نشان داد که بعد از مرک، استخانهای او را از قبر خارج کردند و سوزاندند. ترجمه های زیاد دیگری از کتاب مقدس به دنبال اون برای مردم عوام در دسترس قرار گرفتند و این سبب یک تحول بزرگ شد چون دیگه یک مرد عامی میتونست کتاب مقدس رو بخونه صدها هزار نفر به این جنبش پیوستند و به اونها پروتستان گفته شد کلمه پروتستان به معنی ایستادگی و اعتراض کردن هست پروتستان ها به نحوه تعالیم کاتولیک ها که به اعتقاد اونها مبنای کتاب مقدسی نداشت اعتراض کردند. وقتی عیسی تعالیمش رو در متا پنج میداد اون دوره از تاریخ شبیه ایام قبل از جنبش بود اگر شما در بررسی عهد قدیم با ما همراه بودید یادتونه که گفتیم قوم یهود به بابل که بعدها تبدیل به پارس شد به اسیری رفتن در طول مدتی که یهودیان در اسارت بودند نهمیا به شدت ناراحت بود چون زبان پدریشون رو فراموش کرده بودند دیگه نمیتونستند ابری بخونند وقتی از اسارت بازگشتند اونها به زبان آرامی صحبت میکردند که در بابل و فارس یاد گرفته بودند زبان آرامی زبان اصلی اونها شده بود بسیاری از اونها عبری نمیخوندند کاتبین و فریسیانی که شریعت موسی را به اونها تعلیم میدادند زبان عبری می خوندند و میفهمیدند این به اونها امتیاز ای میداد مردم عامی یهودی به خاطر زبان ابری نمیتوانستند کتاب مقدس بخونند مردم آمین نمیتونستند چیزی رو که علمای دینی میگفتند رد یا تکذیب کنند چون که فقط اونها میتونستند کتاب مقدس را بخونند اگر به شش پاراگراف در متا پنج از یک ترجمه خوب نگاه کنید خواهید فهمید که این بخش از باب پنج انجیل متا میتونه به شش پاراگراف تقسیم بشه. ملاحظه کنید که در ابتدای هر کدام از این شش پاراگراف عیسی میگه گفته شده است. اما من به شما میگویم. اکثر مواقع وقتی عیسی میگه گفته شده است منظورش گفته های نیست بلکه منظورش گفته فریسیان و علمای دین هست. او به چیزی اشاره میکنه که اونها خارج از کتاب مقدس تعلیم دادند و این تعالیم حقیقی موسی نبود. وقتی علمای دین گفته های موسا رو تفسیل میکردند، عیسی با تفسیر اونها موافق نبود ببینید عیسی در این بخش از کتاب مقدس با مردان مذهبی مقابله میکنه به طور کاملا واضح عیسی میگه اونها به شما اینطور گفتند اما حالا من به شما میگم اونها موسی رو به روش خودشون تفسیر کردند اما حالا من موسی رو به روش درست به روش خدا تفسیر میکنم اگر تفاوت تفسیر عیسی و علمای دین و برخوردهایی رو که با اونها داشت ملاحظه کنید میتونید اصل اختلاف اونها رو اینطور شرح بدید قبل از اینکه عیسی شریعت خدا رو تعلیم بده قبل از اینکه اونها رو در زندگی مردم به کار بگیره اونها رو از منشور محبت خدا عبور میداد. بعد اون رو در زندگی مردم به کار میگرفت. فریسیان و علمای دین وقتی شریعت موسی رو تعلیم میدادن، این کار رو با شریعت خدا به مردم ضربه میزدند. اونها ظاهرا هدف و قصد و قلب خدا رو موقعی که شریعت رو به موسی داد یا درک نمی کردند و یا به خاطر نمی آوردند هدف خدا از دادن شریعت همیشه نیکوی انسان ها بوده شریعت خدا ابراز محبت خدا نسبت به مردم بود عیسی هرگز قصد خدا رو از دادن شریعت به مردم فراموش نکرد وقتی عیسی شریعت خدا رو تعلیم میداد همیشه محبت خدا رو مد نظر قرار میداد عیسی به شاگردان خودش می میگفت من به طور خلاصه برای شما تفسیر میکنم به پایین تپه نگاه کنید آیا اون مردم رو می بینید؟ اونها مشکلاتی دارند یکی از دلایلی که اونها مشکلات دارند اینه که اونها مثل گوسفندان بدون شبان هستند اونها دست راستشون رو از دست چپشون تشخیص نمیدن چون که کلام خدا رو نمیدونن شما قبل از اینکه پایین برید و کلام خدا رو به اونها تعلیم بدید باید کلام خدا رو به خوبی درک کنید اما وقتی این کارو کردید باید بدونید که چطور کلام خدا رو به کار بگیرید، روح شریعت رو به یاد داشته باشید یعنی اصول شریعت رو به یاد داشته باشید. هدف از کلام خدا رو به یاد بیارید که چرا خدا اون رو به مردم داد. به خاطر محبتش نسبت به مردم. هدف شریعت خدا این نبود که ما غمگین در گوشی بنشینیم و قوانینی رو وضع کنیم که منجر به بدبختی ما میشه. شریعت خدا از محبت خدا نسبت به انسان سرچشمه میگیره. وقتی شریعت خدا رو در خروج مطالعه می کردیم، گفتم که اگر شریعت خدا میگه چیزی درسته، شما میتونید قطعا بفهمید که عواقب اون چیز نیکو هست. اگر شریعت خدا میگه چیزی غلطه، میتونید بفهمید که عواقب اون چیز بد هست. حالا چون خدا ما رو دوست داره، نمیخواد که ما از عواقب کارهای غلط رنج بکشیم. بنابراین به ما این شریعت رو میده. شاید فریسیان و علمای دین اون رو درک نمیکردند یا هدف از شریعت رو فراموش کرده بودند. عیسی هرگز هدف از کلام خدا رو فراموش نکرد و همیشه قصد خدا از دادن شریعت به مردم رو میدونست. یک بار عیسی فرق بین خودش و علمای دین رو با مثل نشان داد او و شاگردانش از مزرعه عبور میکردند شاگردان او گندم خوردن روز سبت بود. علمای دین گفتند شما نمیتونید در روز سبت این کار رو بکنید. علمای دین و فریسیان از این ناراحت شدند و گفتند ببین شاگردان تو چیکار میکنند؟ عیسی گفت یادتونه وقتی داوود از دست شاول فرار میکرد و گرسنه بود چیکار کرد؟ داوود و مردانش گرسنه بودند. داوود میدونست که میز نان تقدمه در معبد هست و روی اون میز نان هست. شریعت میگفت که فقط کاهنین میتونن از نان تقدمه بخورند اما داوود وارد معبد شد و به ابیاتار کاهن گفت اون نونها رو به من بده و کاهن نانها رو به او داد. این ایسا بود که این فرمان رو به داوود داد چون که هدف از میز نان تقدمه این بود که به انسان بگه خدا میتونه نان روزانت رو به تو بده. خدا میتونه نیازهای روزانت رو رفع کنه. حالا کاهنین و علمای دین به خاطر نمی که هدف از میز نان تقدمه این نیست که به انسان بگه بزار انسان از گرسنگی بمیره و بعد نان رو به اونها بده. خب عیسی به اونها فرمود ای ریا کاران. سبت برای انسان به وجود آمد. نه انسان برای سبت. خدا اول انسان رو خلق کرد و بعد از اون سبت رو برای راحتی انسان آفرید. ایسا هرگز این رو فراموش نمی کرد. نمیدونم شما اون رو فراموش می کنید یا نه. نمیدونم چند نفر از ما در روی کرده به کتاب مقدس مثل فریسی ها عمل می هرگز یادم نمیره جوانی پیش من اومد که من شبانیش رو میکردم. او تبدیل شده بود. او بیست و سه ساله بود و در نیروی دریایی کار میکرد و زندگی سختی داشت. او بر روی دریا کار میکرد و دائما در گناه بود. وقتی او بیست ساله بود در عالم مستی با یک زن بار ازدواج کرده بود. وقتی مستی از سرش پرید او رو طلاق داد. وقتی بیست و سه ساله بود به کلیسای ما اومد و تبدیل شد. وقتی به مادرش گفت که من از نوع متولد شدم، مادرش گفت این خارقلاده است اما می دونی که دیگه تو نباید ازدواج کنی. چون طلاق گرفتی. اگر می مسیحی باشی، دیگه نمی ازدواج کنی. این جوان بیچاره اومد که شبانش رو ببینه. او ایماندار به ایسای مسیح بود و شنیده بود که من عادل شمرده شدگی رو معهزه می کنم. وقتی به کتاب رومیان برسیم خواهیم دید که عادل شمرده شدگی یعنی مثل اینکه هرگز گناهی مرتکب نشدی. من در معایزم گفتم که زندگی شما مثل یک نوار کاست هست. وقتی که به مرگ ایسای مسیح برای نجاتتون اعتماد می خدا گناهانتون را از زندگی شما پاک میکنه. کنه. هر جا که دوباره گناه می کنید، خدا اونجا نوار رو قطع میکنه و دوباره می چسبونه. وقتی خدا نوار زندگی شما رو روشن میکنه، هیچ گناهی در اون نیست. من اینو در بسیاری از معیزه ها اعلام کردم وقتی این جوان اومد که منو ببینه او سرش رو بین دستاش گرفت و گفت من مشکلی دارم شنیدم شما گفتید مثل اینکه من اصلا گناهی انجام ندادم تمام اون زنهایی که با انها خوابیدم خدا اون قسمت از زندگی منو قطع کرده اما مادرم میگه من با کسی که فقط یک تکه کاغذ امضا کرده بودم وقتی که در زندگیم به صداقت هم برسم خدا اون قسمت رو فراموش نمیکنه و من مجبورم تا آخر عمرم تنها بمونم آیا این چیزیه که کتاب مقدس میگه خب شما فکر می کنید کتاب مقدس به این جوان چی میگه وقتی خدا قانون ازدواج رو وزمی می کرد هدفش از اون چی بود وقتی خدا این قانون رو وزمی می کرد چیزی که در دلش بود حفاظت یک خانواده بود یک خانواده شاد مسیحی خدا می‌خواست که اون جوان یک زندگی شاد مسیحی داشته باشه به این دلیل خدا قانون ازدواج رو وضع کرد حالا شما چرا اون قانونی رو که خدا با این هدف وضع کرده برمیدارید و منحرف می‌کنید و میگید تو نمیتونی یک زندگی و ازدواج شاد مسیحی داشته باشی این کاری بود که کاهنین و فریسیان می‌کردند اونها فراموش کرده بودند که شریعت خدا از قلب پر از محبت خدا سرچشمه گرفته اما اونها اون قانون رو به صورت شریعتی در مورد مردم به کار می‌گرفتن ما به این شریعت مکتوب می‌گیم شما میتونید مردم را با کتاب مقدس نابود کنید وقتی پولس میگفت شریعت مکتوب می‌کشت منظورش همین بود در این بخش از متتاب باب 5 عیسی میگه قبل از هر چیزی شما باید عادل بشید وقتی شما نظر منو از کتاب مقدس بدونید ادالت رو آبکی نخواهید کرد پارسایی شما باید از پارسایی علمای دین و فریسیان بیشتر باشه. ایسا همینطور میگه شما لازمه که چیزی رو درباره نظر من از کتاب مقدس بدونید. فقط به کلمات مکتوب کتاب مقدس اکتفا نکنید. این روش خدا نیست. عیسی آمد که شما به فراوانی حیات داشته باشید. تصمیم بگیرید کارهای درست انجام بدید و از عیسی مسیح پیروی کنید. وقتی عیسی در مورد روابط ما با مردم پای کوه میکنه، او تفسیری بعد از تفسیر دیگه به ما میده ابتدای عیسی به ما تعبیری میده که مربوط به رابطه با کسی هست که به عنوان برادر ما توصیف شده او گفت شنیدید که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر کس برادر خود را ابله بخواند. به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق مستوجه مستوجب آتش جهنم خواهد بود پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو و با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن عیسی داره به ما میگه وقتی به پایین کوه برید با این مردم رابطه خواهید داشت انواع مختلف انسان ها اون پایین وجود دارن. اونجا کسانی هستند که شما اونها رو برادر خطاب می حالا بذارید چیزی در مورد رابطتون با برادرتون به شما بگم. شما باید رابطه با برادرتون رو تمرین کنید. بعضی ها میگن زندگی کردن با مقدسین در اون بالا خیلی باشکوهه. اما زندگی کردن با کسانی که این پایین هستن داستان دیگریه. همیشه یک جا جمع شدن با ایمانداران و یا برادران آسان نیست. یک بار کتابی رو دیدم که عنوانش بزرگترین مشکل خادمین بود. وقتی کتاب رو باز می کردید تمامی محتویات اون از این دو کلمه تشکیل یافته بود. دیگر خادمین. بزرگترین مشکلی که خادمین دارند، خادمین دیگر هستند. حالا باز هم میگه اگر شما میخواهید بخشی از راه حل و جواب من باشید، باید با برادرانتون یک جا جمع بشید چون مسیحیت یک ورزش تیمیه خوشابهالها به ما میآموزه که مسیحیت مثل دوره ای هست که یک بخش تئوری داره و یک بخش عملی وقتی شناسان و شیمیدانان تعلیم میدن دن کلاسای اونها از دو بخش تشکیل شده تئوری و آزمایشگاهی بعضی از دانشجویانی که اون دوره رو میگذرونند آزمایشگاه رو زیاد دوست ندارن بخش تئوری آسان‌تره اما بخش آزمایشگاه جاییه که شما باید آموخته رو در قسمت تئوری در عمل نشون بدید. اگر بفهمید که عیسی در بالای کوه چی میگه، خواهید فهمید که عیسی میگه مسیحیت یک دوره آزمایشگاهی هم داره. وقتی عیسی بر سر کوه تعلیم میداد، اون دوره تئوری بود. وقتی شاگردان اون تعالیم رو در پای کوه به کار میگرفتند، اونجا قسمت آزمایشگاه بود. ایسا همینطور میگه که مسیحیت یک ورزش تیمیه بنابراین باید رابطه با برادران رو تمرین کنید. اگر ما همدیگر را از دست بدیم، نمیتونیم بر دنیا پیروز بشیم. اگر شما نتونید حتی با برادر خودتون کنار بیاید، چطور میخواید بر دنیا پیروز بشید؟ اولویت ها رو در اینجا ملاحظه کنید، وقتی به وسوسه های ایسا نگاه میکردیم، گفتم که اونجا پیامی هست که مکررا در کتاب مقدس تکرار شده که میتونه در دو کلمه خلاصه بشه اون پیامینه اول خدا خدا همیشه در صدر زندگی های ماست حالا ملاحظه میکنید که اینجا در سر سرکوه ما یک استثناء برای اون قانون داریم عیسی داره به ما میگه اگر میخواهید به حضور خدا بیایید و دعا کنید و رابطتون با برادرتون درست نیست به اولویت ها توجه کنید اول برید بعد بیایید. اول برادرتون بعد خدا این اولویت نشون میده که عیسی چقدر برای رابطه شما با برادرانتون ارزش قایله شما باید این رو با برادرانتون تمرین کنید در جلسه قبلی ما شروع کردیم به بررسی وسیع ترین متن کتاب مقدس در باب پنج متا که بهش ادالت رابطه ای گفتیم این متن از متا پنج بیست و یک شروع میشه و در متا 548 تموم میشه بعضی از ترجمه های کتاب مقدس این متن رو به شش پاراگراف تقسیم کردن در هر پاراگراف عیسی به ما تعلیم میده که چطور با انواع مختلف مردم در زندگی هامون رابطه ایجاد کنیم در اولین پاراگراف عیسی میگه که چطور باید با برادرمون با شاگردمون رابطه برقرار کنیم و در پاراگراف بعدی به رابطه با کسی اشاره میکنه که عیسی او را به عنوان رقیب ما توصیف میکنه بعد او به رابطه با دشمن اشاره میکنه. حالا فرق بین رقیب و دشمن چیه؟ بعضیها میگن وقتی در بازار تجارت میکنید، دو چیز به دست میارید: پول و تجربه. وقتی شما با رقیب معامله میکنید، او همیشه پول به دست میاره و شما همیشه تجربه کسب میکنید. رقیب شما همکار شماست، او حریف شماست. این دنیای رقابت هست. پس این متن به ما یاد میده تا فرصت داریم با رقبامون سازش کنیم. بعضی از مردم رفتارهای مخالفی دارند. اونها بلا فاصله میگن من بر علیه شما شکایت خواهم کرد. شما را به دادگاه میکشونم. شما رو محکوم میکنم. عیسی میگه نه. بلکه کاملا برعکس شما مسئولیت دارید که با رقیبتون در صلح باشید. فرقی نمیکنه که او با شما در صلح هست یا نه. این چیزیه که در کنترل شما نیست. اما شما میتونید با او صلح داشته باشید. در پاراگراف بعدی عیسی تعالیمی درباره زنان به ما میده. من از این متن اینطور استنباط میکنم که عیسی در سر کوه فقط به مردان تعلیم میداده. به اعتقاد من کسانی که در نخستین گردهمایی مسیحی شرکت کرده بودند مردان بودند. چون عیسی با اونها در مورد زنان صحبت میکنه. او به طور کلی در مورد رابطه اونها با زنان صحبت میکنه و رابطه شون با همسرانشون به این دلیل معتقدم که این یک جلسه مردانه بوده وقتی او با این مردان در مورد زنان صحبت می کرد این طور گفت شنیدید که گفته شده زنا نکن اما من به شما می گویم هرگاه مردی از روی شهوت بزنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود آن را بیرون آور و دور انداز زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی اگر دست راست از تو را گمراه میسازد آن را ببر و دور انداز زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی حالا اینجا باز هم یک تعلیم عیسی را میبینیم که مردم بسیار در مورد اون دچار سوء تفاهم میشن یه روز تاجری پیش من اومد و از من پرسید آیا نظر عیسی اینه که با نظر شهوت بزنی فکر کردن به اندازه زنا بد هست؟ من گفتم نه. ظاهر قضیه نشون میداد که او انتظار نداشت که پاسخ من نباشه. بهش گفتم به نظر میرسه که ناامید شدی. او گفت خب اگر هر دوی اونها یکی باشند من یقینا میدونم دونم که کدومش خوشایندتره. من تعجب می کنم وقتی بعضیا ها فکر می کنند که عیسی داشت می گفت فکر آلود به همون بدی زنا هست. این چیزی نیست که عیسی گفت. می میکنم که عیسی داره این رو میگه. به پایین تپه نگاه کنید، آیا تمامی مشکلات اونها رو میبینید؟ بسیاری از این مشکلات به این دلیل بروز میکنه که مردم نمیتونن روابطشون رو با جنس مخالف کنترل کنن. حالا اگر شما میخواهید جواب را حل من باشید، باید یاد بگیرید که چطور با جنس مخالف رفتار کنید. به عبارت دیگه باید بتونید هوای نفستون رو کنترل کنید. شما باید مشکل گناهان جنسی رو کنترل کنید. این چیزیه که او اینجا بهش اشاره میکنه. گناهان جنسی. عیسی با موش کافی در مورد منبع گناه تعلیم میده. اما مخصوصا راه حل گناهان جنسی رو هم تعلیم میده. این اساس تعالیم او در مورد گناهان جنسی هست. او میگه اگر واقعاً نمیخواهید مرتکب گناهان جنسی بشید، پس نگاه نکنید. به طور کاربردی تعلیم او در مورد در چشمینه. اگر چیزی که بهش نگاه می سبب گناه شما میشه، بهش نگاه نکنید. در سیصد و بیست و پنج بعد از میلاد بر اساس این آیه و آیات دیگری در مت نوزده شورای کلیسا مجبور شد قانونی و از کنه که می ناقص کردن بدنتون اشتباهه. چون پدران کلیسا و بنیانگزاران کلیسا خودشون رو به خاطر این مت، اخته میکردند این چیزی نبود که عیسی تعلیم میداد عیسی تعلیم نمیداد که مردان باید خودشون رو اخته کنن تا بر گناه جنسی غلبه کنن عیسی تعلیم نمیداد که مردان باید دعا کنن خدا یا نیاز جنسی ما رو بردار تا گناه نکنیم خدا به ما احساسات جنسی داده رابطه با جنس مخالف چیز زیبایی هست. عیسی داشت تعلیم میداد که مردان باید بتونن احساسات جنسیشون را کنترل کنند. و میتونم اینطور دعا کنم خدایا به من کمک کن که احساسات جنسیم را رو کنترل کنم در اولین گردهمایی مسیحیان عیسی داشت به مردان تعلیم میداد اگر یاد نگیرید که اجازه بدید خدا نیازهای جنسی شما رو کنترل کنه نخواهید توانست بخشی از راه حل و جواب من باشید افراد زیادی هستند که شروع کردن بخشی از راه حل و جواب های عیسی باشند و به طور کاملا استراتژیک در پادشاهی خدا قرار گرفتن. اما امروزه اونها به خاطر گناهان جنسی راه حل و پاسخ عیسی نیستن. اونها اجازه ندادند که خدا روابط جنسی اونها را کنترل کنه. در تفسیر این تعالیم به طور خلاصه عیسی داره میگه گناهان جنسی با نگاه کردن شروع میشه. گناه از یک تفکر سرچشمه میگیره. در یعقوب باب به یک مطلبی رو داریم که میتونیم بهش تشریح گناه بگید قبل از اون چیزی رو میبینید که میتونید بهش تمع یا تعمه بگید بعد به اون تعمه نگاه میکنید و با تمع به اون فکر میکنید خدا به این شهوت میگه ایسا به ما میگه که گناه با تمع شروع میشه با یک نگاه و یک شهوت ایسا نمیگه که فکر شهوت آلود به اندازه زنا بد هست ایسا تعلیم میده که مسئله اینه آیا میخواید گناه کنید یا نمیخواید اگر نمیخواهید گناه کنید قبل از اینکه گناه شروع بشه اون را متوقف کنید نگاه شهوت آلود نکنید چون اگر نگاه کنید به شهوت خواهید افتاد و بالاخره وسوسه خواهید شد وقتی که تسلیم وسوسه شدید گناه خواهید کرد کتاب مقدس عاقبت گناه رو با کلمه مرگ توصیف میکنه وقتی به گناه را مطالعه کنید به این نتیجه میرسید که هیچ چیز خوبی در گناه وجود نداره موضوع کنفرانس کسانی که با کلیساهای محلی و مشکلات اعضای اون کار میکردند نشون میداد که شاید ترین گنا هنوز هم زنا هست. وقتی مددکاران اجتماعی که مسیحی نبودند مقالاتشون رو میخوندن، می میشدند که نظر اونها هم همین بود که گناه زنا چیز خوبی نبود. با خودم فکر کردم چرا اونها نمیخوان کلام خدا رو برای حل این بپذیرند؟ در فرمان هفتم خدا میگه زنا چیز خوبی نیست. وقتی خدا میگه زنا اشتباهه منظورش اینه که عواقب اون چیز خوبی نیستن. مددکاران اجتماعی هیچ اشاره ای به فرمان هفتم نمی کردن که به خاطر عواقب هست که گناه زنا چیز خوبی نیست من واقعا شیفته یکی از دستاوردهای اونها شدم که اینطور میگفت مردم اون که بعضی ها میگن به خاطر وسوسه شدن و قرار گرفتن در محیط گناه سقوط نمی کنن و زنا نمی کنن. اونها قبل از اینکه خانه رو ترک کنند سقوط کردند اونها چیز خاصی رو در ذهنشون قرار دادند و گفتند که اگر بتونم انجام خواهم داد. در فرهنگ امروزی اگر شما چنین طرز تفکری داشته باشید قبل از اینکه حتی کس دیگری رو ملاقات کنید سقوط شما حتمی است. امروزه ارتکاب گناه زنا بسیار تر شده چون بسیاری از مردم قبلا با این طرز فکر خو گرفتند حالا عیسی داره میگه که زنا نتایج وخیمی برای مردم پای کوه به همراه داره. فکرش رو بکنید که گناه زنا چطور بر کودکان تأثیر می‌ذاره. به حقوق کودکان فکر کنید. عیسی میگفت اگر می‌خواید بخشی از راه حل من باشید، باید یاد بگیرید که قانون ازدواج قانون مقدس برای خانواده است. نقشه خدا برای ازدواج و تشکیل خانواده اینه که افراد لایقی رو کنار هم قرار بده و جریان زندگی توسط آنها ادامه پیدا کنه. زنا این قانون مقدس رو میشکنه پاراگراف بعدی تعالیم عیسی بر بالای کوه در مورد رابطه مردان با همسرانشون هست عیسی در اون متن داره به اونها میگه که رابطه پایدار شما با همسرانتون یک الزام هست عیسی گره بسیار محکمی میزنه و تعلیم میده که ازدواج غیر قابل فسخ هست عیسی ماندگاری روابط ازدواج رو در بسیاری جاها تعلیم میده چرا عیسی ازدواج رو رابطه ماندگار اعلام کرده یکی از دلایلش به خاطر حقوق کودکان هست. کودکان حق دارند که در محیط خانه ای پایدار پرورش پیدا کنند امنیت بچه ها در ازدواج چیزی دائمی هست اگر زنا شایع باشه بچه ها چه امنیتی خواهند داشت. امروز طلاق بسیار رایج شده. یکی از چیزهایی که باعث طلاق میشه آشکارا عواقب زنا هست وقتی طلاق رواج پیدا میکنه فرزندان آسیب دیده هم زیاد خواهند شد. بنابراین ایسا به مردم تعلیم میده اگر میخواهید بخشی از جواب و راه حل من باشید، نیازهای جنسیتون رو با همسرتون تأمین کنید. بهترین دفاع حمله کردن هست. بهترین دفاعی که میتونید در مقابل زنا بکنید، اینه که رابطه زناشویی شادی با همسرتون داشته باشید. در این صورت در مقابل زنا آسیب پذیر نخواهید بود. در پایان باب پنج متا عیسی در ادامه تعالیمش چیز بسیار بسیار مهمی رو در مورد معاملات تجاری اونها تعلیم میده بعد به اونها تعلیم میده که چطور با همسایگانشون کنار بیاند و چطور با دشمنانشون برخورد کنند در این شش پاراگراف متا 5 ایسا در مورد روابط صحبت میکنه شما باید پارسا باشید شما باید بفهمید که چطور کلام خدا رو در زندگی خودتون و در زندگی دیگران به کار بگیرید باید یاد بگیرید که چطور کلام خدا را در زندگی خودتون و روابطتون به کار بگیرید. عیسی علاقمند به روابط شما با برادرانتون، رقیبانتون، جنس مخالف و با شریک زندگی، با همسایه و دشمنانتون هست. اینها حقایق این بخش از متا هستند. وقتی به هر کدام از این پاراگرافها در متا پنچ نگاه می کنید، باید در پرتو این به اونها نگاه کنید که عیسی می شما را بخشی از راه خودش برای نیازهای مردم پای کوه بکنه. امیدوارم که شما بخشی از راه حل ایسا برای تمامی مشکلات باشید. اگر نیستید، آیا مایل هستید که باشید؟ شما نمیتونید و اولین گام اینه که به گناهانتون اعتراف کنید و مرگ عیسی مسیح رو به عنوان کفاره گناهانتون بپذیرید. بخشش خداوند رو دریافت کنید و بپذیرید و به او بگید که میخواید بخشی از راه حل او باشید. و از او بخواهید که کمک کنه تا هر روز وفاداران او را پیروی کنید. عزیزان، آیا شما بخشی از مشکلات هستید؟ و یا میخواید اجازه بدید خدا شما رو به عنوان بخشی از راه حلش به کار بگیره؟ برای نیل به این منظور، اول باید اجازه بدید خدا در زندگیتون کار کنه تا اینکه رابطی درستی با اون داشته باشین. دایما اینه که شما به این متحد باشید. اگر نیستید دا میکنیم امروز این تعهد رو بسپارید. بعد از اون میتونید محبت او رو در تمامی روابطتون به کار بگیرید. تا برنامه بعدی امیدواریم محبت اون از طریقه شما به اطرافیانتون نثار بشه.